به نام خدای یگانه مهربان سلام از کوانترین ایام از هنگامی که مادر و مادر مادربزرگ یا پیر سالخورده ای در جهان بوده افسانه هم بوده عمر افسانه ها و قصه های آنیانه به اندازه عمر انسانه این هفته قراره افسانه ای را از مردمان خطه پهناور خراسان براتون نقل کنم به نام افسانه سمندر چلگیس برگرفته از کتاب سمندر چلگیس به گردآوری محسن میهندوست روزی روزگاری پادشاهی بود که سالها در حسرت داشتن فرزند پسر به درگاه خدا دعا و استقاسه میکرد تا اینکه یه روز درویشی به غصر پادشاه اومد و شروع کرد بخوندن پادشاه با شنیدن صدای درویش به وزیرش گفت این کیه که در آواز میخونه چی میخواد بش بدین وزیر به سراغ درویش رفت و ازش پرسید ای درویش نیازت چیه چی میخوای؟ درویش گفت من به چیزی نیاز ندارم فقط با خود پادشاه کار دارم وزیر پیش پادشاه برگشت و گفت قربان اون درویش با شخص شما کار داره پادشاه دستور داد درویش رو داخل قصر بیارن و از درویش پرسید که با اون چه کاری داره درویش گفت جناب پادشاه من میدونم که شما فرزند نداری به همین خاطر اومدم تا چیزی به شما بدم که پادشاه حرف درویش رو قطع کرد و با خوشحالی پرسید چه چیزی چه چیزی درویش از کیسه‌ای که به همراه داشت سیب سرخی بیرون آورد و گفت آه چاره بی فرزندی تو این سیب سرخه نصف این سیب رو خودت بخور نصفش هم به ملکه بده پادشاه سیب رو گرفت و همونطوری که در ویش گفته بود نصفش رو خودش خورد نصف دیگرش رو هم داد به ملکه گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه ملکه باردار شد و بعد از نه ماه پسری به دنیا پادشا پادشاه از خوشحالی نمیدونست چیکار بکنه اونقدر این پسر رو دوست داشت که همه در تعججب بودند روزها پی در پی گذشت تا اینکه یه روز دوباره درویش به در قصرومد و به پادشاه گفت ای پادشاه فرزندی که به تو دادم کجاست پادشاه گفت ای درویش تو کی به من فرزند دادی درویش با عصبانیت فریاد زد من فرزندم رو میخوام اگه اونو بهم ندی آدم و آدم رو خبردار میکنم پادشاه گفت برو برو هر کاری میتونی انجام بده من فرزندم رو به تو نمیدم درویش رو به غصد کرد و فریاد زد آی چکشم پادشاه چکشم پادشاه در این موقع پسر پادشاه از غصد بیرون اومد و خودش رو به درویش رسوند و گفت سلام پدر کجا بودی؟ پادشاه با تعجب به پسرش نگاه کرد و گفت پسرم پسرم من من پدرت هستم نه این درویش بینوا ولی پسر از کنار درویش تکون نخورد و دستای اونو توی دستاش گرفته بود پادشاه با دیدن این صحنه از اونجایی که سخت دلبسته پسر بود دست به دامان درویش شد و گفت ای درویش بیاو به منو همسرم رحم کن. ما تمام دلبستگیمون توی این دنیا فقط همین یه پسره. اگه اونو از ما بگیری منو مادرش از قصدق می به بعد پادشاه با خواهش و تمنا از اون خواست پسر رو به اونا ببخشه و در عوض هر درویش بخواد بهش بده. خلاصه. در ویش هم دلش بهار حال پادشاه سوخت و گفت باشه باشه من این بسر روح برای تو میذارم و بعد بدون که چیزی از پادشاه بخواد از قصر خارج شد روز اومد شب اومد و سالها گذشت و گذشت اینکه پسر بزرگ شد و یه روز به پادشاه گفت من میخوام به خاستگاری سمندر چلگیز برم و اگه بتونم با اون ازدواج کنم پادشاه با ناراحتی من نگرانی گفت پسرم ازدواج با سمندر چلگیز کار ساده ای نیست تو نمیتونی با اون در بیفتی اون سرها زیادی بریده خدایی نکرده سر تو رو هم می بره اون وقت من و مادرت از خصه میمیریم ولی پسر تصمیم خودش رو گرفته بود و مصمم بود هر طوری شده با سمندر چلگیس ازدواج کنه بنابراین با قاطعیت گفت من فردا باید برم و پسر روز بعد قبل از طلوع خورشید قصد رو ترک کرد و را افتاد و رفت رفت و رفت و رفت تا به دریایی رسید دید لب آب دریابازی هی به دریا میره و هی از آب بیرون میاد و بعد به دریا رفت و تا یه ساعت برنگشت این بار وقتی دریا از آب بیرون اومد دید پسری اونجا ایستاده پرسید ای جوان تو کی هستی اینجا چیکار میکنی پسر گفت ای دریاباز تو اگه چخشنپادشاه رو ببینی از اون چی میخوایی؟ دریاباز گفت من اگه چخشنپادشاه رو ببینم از اون میخوام که برادرم بشه و پسر گفت من خود چخشم هم و دریاباز وقتی فهمید که این پسر جوون خود چخشنپادشاه برادرش شد و با هم را افتادن و رفتن و رفتن تا به مرد ستاره شماری رسیدن که مشغول شمردن ستاره های آسمون بود. اونا اونقدر سرب کردند تا کار ستاره شمار تموم شد. بعد پسر پرسید: ای ستاره شمار تو اگه چخشم پادشاه رو ببینی از اون چی میخوای؟ مرد ستاره شمار گفت: من اگه چخشم پادشاه رو ببینم خیلی خوشحال میشم و ازش میخوام که برادر من بشه. و وقتی فهمید که پسر خود چخشم پادشاه خوشحال شد و با اون پیمان برادری بست و خلاصه سه نفری را افتادن و رفتن و رفتن تا کجا چند ثانیه صبر کنید الان براتون میگم. پسر جوان افسانی ما یا همون چخشم پادشاه به همراه مرد دریا باز و مرد ستار شما رفتن و رفتن تا به پیرمردی رسیدن که در حال بیرون آوردن خاک از گودار بزرگی بود چخشم پرسید ای پیرمرد خسته نباشی اینجا چیکار میکنی پیرمرد گفت دنبال آب میگردم پسر دی پیرمرد اونقدر بیلش رو به آرومی به زمین میزنی که انگار از چیزی حراست داره چرشن پاچه از پیرمرد پرسید پدرجان چرا اینقدر با احتیاط بیلت رو به زمین میزنی؟ پیرمرد جواب داد اینجا اژدهایی وجود داره که اگه سنای بیلم رو بشنوه منو میخوره پسر دریاباز و ستاره شمار از پیرمرد خداحافظی کردن و رفتن به طرف شهر. وقتی رسیدن شهر دیدن که توی شهر تشنگی بیداد میکنه و بیشتر که پرسجو کردن فهمیدن وسط قرارات این شهر اجدههایی خوابیده که هر روز مردم شهر باید برای اون هفت کیسه گندم و هفت آهو و یه دختر از اهالی شهر رو ببرن و اجدها بعد از خوردن اونا، یه چکه آب از زیر زبونش بیرون میریزه و مردم با همین یه چکه آب تا یه هفته سر میکنه چخشن پاچا از شنیدن این شرایط مردم شهر خیلی ناراحت شد و دلش به حال مردم شهر سوخت و با خودش گفت من باید هر جوری شده مردم این شهر رو از تشنگی نجات بدم و بعد راه قنات رو در پیش گرفت و راه دید که یه دختر و هفت کیسه گندم و هفت آهو اونجاست و دختر که خیلی هم زیبا بود زار زار گریه میکرد چخشم پادشا گفت چرا گریه میکنی؟ دختر گفت وقتی قراره چند دقیقه دیگه یه این اجدا باشم چرا گریه نکنم چخشن دختر رو دلداری داد و به اون قول داد که نزاره دختر تعمه اجده هفت سر بشه و همونجا کمین کرد و به دختر گفت هر وقت اجده اومد به من علامت بده و نگران نباش طولی نکشید که اجده در وسط قنات پیدا شد و به دختر نزدیک و نزدیک شد دختر که داشت از ترس میلرزید به چخشن پادشاه علامت داد و چخشن پادشاه یه دفعه با شمشیر جلو اومد و با یه ضرب اجده رو از بین برد و آب تند و پرشت به طرف شهر روان شد دختر که از مرگ نجات پیدا کرده بود دست به خون اجده ها برد و اون رو به پشت چخشن پادشاه آمد هر شهر همه خوشحال شده بودن و خبر کشتن اژدها به پادشاهون شهر رسید. پادشاه گفت: چه کسی اژدها را کشته؟ هر کسی که از راه میرسید میگفت من، من اژدها رو کشتم. ولی وقتی دختر به شهر برگشت به همه گفت که کشتن اژدها کار جوانی به نام چقشم پادشاه بود. پادشاه دستور داد چخشن پادشا رو به قصر آوردن و به اون گفت در برابر این کار دخترم رو به عقد تو در میارم. ولی چخشن پادشا گفت قربان من نمیتونم از اینجا همسر انتخاب کنم. و از خواست دخترش رو به عقد ستار شمار در بیاره و خودش به همراه مرد باز از اون شهر بیرون ده. اونا رفتن و رفتن تا دوباره به شهر دیگه ای رسیدن که اتفاقا در اون شهر هم مردم از بی آبی به سطوح اومده بودن. اونجا هم اجداهایی مانع رسیدن آب به مردم شهر شده بود. اونجا هم هفت کیسه گندم و هفت آهو و یه دختر غذای روزانه اژدها بود. این بار هم کهشم دلش برای مردم اونجا سوخت و تصمیم گرفت با کشتن اژدها مردم رو از بی‌آبی و تشنگی نجات بده. به همین خاطر به راه افتاد و رفت طرف قنات و در اونجا دید که هفت کیسه گندم، هفت آهو و یه دختر جوون به عنوان غذای اون روز اژدها آماده. دختر در حال گریه و زاری چشم پادشا که میدونست دونست دختر برای چی گریه میکنه اونو دلداری داد و گفت قصه نخور قصه نخور من نمیذارم اجداها تو رو بخوره و بعد از دختر خواست به محض نزدیک شدن اجداها به اون علامت بده و دختر هم همین کار رو کرد چخشن پادشاه با یه ضربه کاری شمشیر اجده رو از پاد درآورد و مردم شهر به آب رسیده این بار هم پادشاه اون شهر به پاس خدمتی که چخشم پادشاه به مردم اون شهر کرده بود گفت که حاضر دخترش رو به عقد اون در بیاره ولی چخشن پادشاه این بار هم گفت که نمیتونه از این شهر همسر انتخاب کنه و از پادشاه خواست و دخترش رو به مرد دریاباز بده و پادشاه هم قبول کرد و دختر پادشاه شد زن مرد دریاباز چشم پادشاه که حالا دیگه تنها شده بود از اون شهر رفت و به راهش ادامه داد چخشنپادشاه هنوز داشت با سمندر چلگیس ازدواج کنه و رفت و رفت تا به نزدیکی دروازی شهری رسید دید در اونجا پیرزنی نشسته و با حیرت به اون نگاه میکنه پیرزن پرسید ای جوان کجا میره تو این شهر کاری داری چخشنپادشاه جواب داد من اومدم تا با سمندر چلگیس ازدواج کنم پیرزن گفت تو جوون برازندهی هستی حیفه که سرت رو به باد بدی به بالای اون دروازه نگاه کن ست تا سر اونجاست همه اونا مثل تو میخواستن با سمندر چلگیست ازدواج کنن ولی سرشون رو به باد دادن تازه از اینا بادشته شاهزادهی ای هم داره به خاستگاری سمندر میاد چخشم پادشاه به حرفای پیرزن توجهی نکرد و به راهش ادامه داد. رفت و رفت تا بالاخره وارد شهر شد. اما نزاشت کسی اون رو ببینه و یه راست به قصر سمندر چلگیس رفت و دید سمندر در خوابه. آروم کنارش نشست و بعد اونو صدا زد و گفت من چخشن پادشاهم. از سرزمین دوری اومدم و در طول راه دو اژدهایی رو که مردم از تشنگی از دست اونا به اومده بودن رو از اسباد دروردم و حاضر نشدم با دختران پادشاه ازدواج کنم چون دلبسته یک تا بودم و بس سمندر نگاهی به چخشم پادشاه این دختر دید نه جوون برازنده بنابراین قبول کرد که با چخشم پادشاه افسانه ما ازدواج کنه بله اونا با هم ازدواج کردن و یک هفته بعد چه اتفاق افتاد؟ چند لحظه صفحه کنید تا براتون بگم باله. یه هفته بعد از عروسی چخشنپادشاه و سمندر چلگیس شاهزادی که خاستگار سمندر بود خبردار شد که ای دل قافه سمندر با کسی دیگه ازدواج کرده عصبانی خرشبین برا افتاد و اومد به شهر سمندر چلگیس و وقتی به پیرزن رسید گفت اگه به قصر سمندر بری و چخشنپادشاه را از بین ببری به اندازه خودت به جواهر می پیرزن هم رفت و دم قصر سمندر نشست و شروع کرد به گریه کردن سمندر که صدای گریه پیرزن رو شنید دلش به حال اون سوخت و به چخشن پادشاه گفت که پیرزن رو به قصر بیاره پیرزن شروع کرد به آه و نالی کردن و سمندر خواست اجازه بده به خدمتکار توی قصر بمونه و سمندر هم از سر دلسوزی قبول کرد پیرزن از اون روز پی یه فرصتی میگشت تا چخشم پادشاه رو از بین ببره. چند روزی گذشت و اینکه یه شب پیرزن دید چخشم پادشاه خوابیده و سمندر شمشیر همسرش رو از کمر اون باز کرده و گوشهی گذشته. از اون به بعد پیرزن دید این کار هر شب سمندره و فهمید که باید رازی در این میون باشه و یه روز هم علت این کار رو از سمندر چلگیس پرسید ولی سمندر در جواب گفته بود دونستان علت این کار به درد تو نمیخوره اما پیرزن اونو فرید داد و با اصرار از زیر زبون سمندر کشید که تا وقتی شمشیر به کمر چخشم پادشاه باشه زنده است فهمید همین که شمشیر رازش جدا کنیم دیگه زنده نیست و پیرزن از شنیدن این راز خوشحال شد و فهمید که چجوری میتونه چخشن پادشاه رو از بین ببره بیرزن بجنس وقتی پی به راز پادشاه برد یه شب موقعی که چخشم پادشاه و سمندر تو خواب بودن به آرومی وارد اتاقشون شد و شمشیر رو برداشت و به سرعت اونو از پنجری قصر به دریا انداخت و چخشم پادشاه در جا مرد همون شب مرد ستار شمار در حال شمردن ها بود که دید ای داد و بیداد ستاره برادرش یعنی چخشم پاچا توی آسمون نیست. آسون و گریون به طرف مرد دریاباز رفت و گفت چه نشستی که برادرمون چخشم پاچا مرده و ستارش توی آسمون نیست. مرد دریاباز و مرد شمار به سراغ برادرشون رفتند. و وقتی وارد غصد شدن دیدن که سمندر چلگیز در حال اشکریختنه. وقتی ماجرا رو پرسیدن سمندر بهشون گفت که باید کار پیرزن و بدجنس باشه. چون اون فقط راز زنده بودن چخشم پادشا رو می است. و دریاباز مثل باد خودش رو به دریا رسوند و توی آب رفت و ساعتی بعد با شمشیر چخشم پادشاه از دریا بیرون آمد. بعد. چرشام پادشاه پیدار شد و سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار سمندر چلگی زندگی کرد و پیرزن هم به سزای اعمالش رسید افسانی ایرانی سمندر چلگیس رو براتون نقل کردم از مردمان خطه پهناور خراسان برگرفته از کتاب سمندر چلگیس به گردآوری محسن میهندوست افسانه ها ریشه در تاریخ هر قوم ملتی دارند افسانه ها و قصه های آمیانی هر کشوری آینه تمام نمای افکار و سنن و عقاید اکثریت مردم اون کشورها در حال و گذشته است هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالح بور. ویراستار سید فری برز نوربخش اجرا مهران دوستی صدابردار شیما زاده ای کونده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود